دانی که چنگ و اود چه تغریر می کنند؟ پنهان خورید باده که تکفیر می کنند. رمز عشق مگوید و مش مشکل حکایتیست که تغریر می کنند. ناموس عشق و رونق و عشاق می برند. من اجوان سرزنش پیر میکنم. ما از بروم در شده مغروب صدفری تا خود در روی پرده چه تبیر می کنند؟ تشویش وقت پیج مغان می باز. این سالکان نگر که چه بااپیر می کنند؟صد آب رو به نیم نظر می توان خرید؟ خوبان در این معامله تقصیر میکن. قومی به جد و جد نهادن وصل دوست قومی دگر حواله به تقدیر می کنن خیل جمله اعتماد مکن بر ثبات در که این کارخانه که تغییر می کنن نیده که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیکپنگری همه تذبیر یکی اون بیت اول که در نسخه محرم قزمینی آمده از نسخه خلقهالی آمده است و خید... یه نسخه دیگه آمده است دانی که چندگه او چه تغییر میکنند پنهان خورید با که تعذیر میکنند تعذیر با این نسخه مجازات شرعی سگیده یکی مجازات بدنی که اونو بهش میگن حد شواب بردن هشتاد تازیان مجازات این حد یکی مجازات نقدی داغ که بهش میگن دیه و البته هر کنون شرایطی داره مثلا فرشون کسی آدم بکشه اگر صاحبان خون راضی بشن میتونه دیه بده او رو خونش بده اگه راضی نشن من یکی هم قصاصه قصاص یعنی عین اون عملی که کرده با خودش بکنه دندون کسی رو دندونش رو بشکنن چش کسی رو پور کرده چش رو پور کنن خلی آخر الانف و بالانفه، والعین و بالعینه، والعزن و بالعزنه، و ستنه به سنه، والجروه و قصاص دندون به دندون، بینی به بینی، چشم به چشم و جراحت ها قصاص دهیم، این چه ولی تعذیر مجازات کردن پاین حد شرعی یعنی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 و مجازات مربوط به حد مربوط به دیه و قصاص نیست، چون تأزیر نداشه فقط مربوط به حد که حد دو تخفیف میدن اگر اگر کسی مستحق به این باشه که در حد در هر تخفیف بدن حد دو تخفیف. این میشه تأزیر. در نسخه خالقالی تأزیر آمده. حالا شعر بگم. دانی که چنگ و اود چه تقریر می کنن تقریر کردن یعنی بیان کردن هم کاری که بنده می کنن اینجا اگر کسی بنویسه اینجا تقریرات فلان کس یعنی سخنانی که میگه میدونید چنگ و اود, اود اینجا اون ساز آلت موسیقی می دونی که چنگ و عود چی میگن میگن تنهان خوری سازات تو خب خلا که تکفیر می یا که تعзир می کنم. جواب این است که اگر تعзир بکنند که خیلی بعد دستونم مارک کرد که شراب بخوره بابا، وقتی با بره کاملا حدام نزنم، نصفش رو بزنم. خب محبتی کرد، محبتی کردم. کاذل نشون میده که مقصود این بالش که می‌بینیم می‌بینیم که بطلت می‌میدید اون وقت فقط این می‌مونه که آیا در مورد شراب خوردن میشه تکفیر کرد یا نه؟ و اگه تکفیر کردن نتیجه‌ش چیه؟ جواب این است که بعد اگر کسی رو یک بار شراب خورد بگیرن حدش بزنن بار دو خمم باز بگیرن باز تو تله بیفته بر سه اگر ادامه بده یا جرامی دیگه حالا فقط این یکی نیست چرای دیگه قاضی میتونه حکم به کفرش کفه بگه چون اصراره بر معاصی کبیره داره این از دین خارج. نتیجه خارجی از دین بودن کشن و اونوقت این است به دست قولی های شریعه یه مردی بود به نام عبالمهجن سقفی اسمشو بنویسن برای اینکه اجرحان بینیسین همه تون اشتگاه از صحابه پیغمبر در دور پیغمبر بود و مرد بسیار شجایی بود ولی شراب که خورد پرچه معنش میکردن فایده چون خیلی آدم شجایی بوده چیزا به اصطلاح اون کسانی که مهمور اهم بودن اینا چشتون هم میذاشتن چیز نمیکردن و دیگه بالاخره عمر حوصلش تنگ میاد اینو همراه یک کسی میرسه که تبعیدش میکنم به جای دوردستی اول مهجن تصمیم میگره که اون با بکشه و اونم سرحساب میشه بلش میکنم میشه. اول مهجن میاد به قشون ایران که سردارش سعد وقاص بوده میپیونده و اونجا باز شراب میخوره و سعد می‌گیره زندانش اتفاقا روز خیلی حساسی پیش میاد و سعدم ناخوش بوده اول پیغام میترس به برای زن سعد که تو من تو زندان تو اسب و زره سعد رو بده به من من سوار شم و برم و ایرانی ها زور رو برده بودن اینا رو دفت کنم قول بیدم که برگردم دوباره تو زندان خود. زنم هم میکنه این کار. یعنی و میفرسته و اول مهجن هم میاد و سوار میشه و میره جنگ مبسوکی میکنه و ارز کنم که رد میکنه ایرانیارا و خیلی شجاعتی زیادی اینشون میده و سعد و قاس هم که بیمار بوده و تو خیمه بوده و نگاه میکرده اینه یک کسی سواه اسب او با ذره او اینا عین خود سعد اومد و جنگی کرد و گروه مهاجم و رد کرد و حمله کرد و شکست داد و برگرشد اول مهجم تو که قردده بر میگرده و اسب و ذره و پس میده و میری به زندانش بعد سعد از زنش میپرسه که قضیه چی بود میگه که قضیه این بود که عبور بنشان گروهی پیغام دازم من محافظت کردم او بود بعد خب از زندان بیرانش میاد چون چیز داشته میگه که حالا ببینید ساعت میگه که من دیگه تو را حد نمیزنم و مجازاتت نمی کنم باید چراب اونم میگه من دیگه برزین چراب نمی و بعد حالا خورت یا نخورت باید در هر صورت انقدر چیز دستشون بوده که این صد بار مثلا شعب پرده تون آدم شجاعی بوده و فکر کردن وجودش با ارزش چشون رو هم گذاشتون یه وقتم اگه لازم باشه دفعه سبب هم بابا رو خارج از دین اعلام میکنن و پهک بکنن سرش این است که در این دوره که این احتمالا در دوره مبارزه دین گفته شده پاکچاه فونریزه ظالمه مقدس نما این گه که رو پنهان بخورید برای اینکه تکفیر میکنن یعنی کار خیلی شدید شدت عمل نشون میده اگه بذاریم تا میکنن یعنی خیلی اذیت نمیکنن چون که قاعدتا واسه مسئولیان 80 تا تازیانه بزن اون واسه بگه 40 تا تازیانه بزن لطف کرده این که نمیرسونه قراره بعدی نکسه یعنی خوب کرده این عکس یعنی حتما تکدیر درسته به دلیل مسائل شرعی که هست. و با اینکه که نصف خالقالی داره تعذیر ولی درست نیست. تکدیر درست. بسرد بله، بله، بله، رمز و مشنوید مشکل حکایتیست که تعریف می کنیم یه راجب که البته اینجا طبعا عشق اشت است، اینجای صوفیانه او اینا را که اوریای شریعت با کارهای صوفیانه مخالف هم مخالفن. با همه دیگر از خود چون و وقتی هم که فشارهای دینی زیاد میشه، درست موقع رواج بازار صوفیت و همین جا در امریکا رواج بازار سوفیان و بین خود هموطنهای عزیز ما میبینید لازم به خود چشهاتون رو باقی کنید خودتون میبینید لازمی توضیح من نیست میگه گویند رمز عشق مگوید و مشنوید نه رمز عشق رو بگید نه میگه خیلی کار مشکلیه حکایت مشکلیست که اینا بیان میکنن یعنی این کاریست که نمیشه انجام داد. خیلی سخت انجام دادن نمی کن. ناموس عشق و رونق و میبرند. ناموس اصلاً نموس یه قانون ناموس طبیعت اینه یعنی قانون طبیعت اینه. ناموس عشق و رونق و میبرند. من منع جوان و سرزنش پیر می کنه. در سه نسخه و از جمله نسخه مرحوم قزجینی نسخه خرقالی هست عیب جوان و سرزنش پیر می کنند. و بنده هم در حافظه همون عیب جوان و سرزنش پیر می کنند. به نظر منم بهتر میاد که عیب باشه ولی خب اکثر نسخا نه نسخه شش تاش من بوده سه تاش عیب بوده می یعنی نشه مرحوم قنداری منع ما از قرون در شده مغروب سد فری، این اینجا همه رو میگه ما مرازش خاجعافه است هم اون حاکم رو هم این مردم رو کل جماعت میگه ما همه این تقریبا آه. همون مزمون روای خیام اسرار ازال را نه تو دانی و نه من این حل معما نه تو خانی و نه من هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه میگه ما بیرون در مغرور شدیم مغرور غرور به معنی استریده مغرور یعنی فری خورد منتها یه وقت کس دیگه‌ام گول میزنه یه وقت خود آدم خودشو گول میزنه. ما از درون در شده مغرور صد فریب تا خود درون پرده چه تعقیب میکنن میگه اون راز درون پرده رو که کسی اصلا نمیدونه تا ببینین که در پرده چیکار دارم میکنن آقا دست شما در تکون خیلی ممنون بسیار تشویش وقت پیر مقان می باز تشویش یعنی آشفته کردن میگه وقت پیر مقان رو آشفته می کنم. پیر مقان رو خاجه علم کرده در برابر پیر سوپیان که قبولش نداشته در برابر شیخ یعنی نفر دوپم در تسبب اینا که گفتم قبلا شیخ حسن منی آخون سعدی و حافظ اینا نیست نفر دوپم است در سرسل مراتب تسبب یعنی سرپرست خانقاه و رئیس کلشون پیره این است که چند جا میگه حافظ که من پیران خانقاه رو قبول ندارم سرز حسرت میرسیم بهشم. سرز حسرت به در میکده ها بر کردن. چون شناسای تو در سومه یک پیر نبود. میده هیچ کدوم اینا رو قبول نده. بنابراین پیر من کیه؟ پیر مقانه. پیر مقان پیر میکده است. البته میرو هم میشه اصطلاح ارفانی گره و هم اصطلاح عادی به هر حال در میکدم یه مقداری مستی و راستی و یه مقداری رو راست بودن هست. و پیران میکده آدمای بعضیشون خیلی قابل ملاحظه‌ای بودن. من ناچارم اینجا این قصه رو که شنیدم بگم. یه کروشی بود اول هواب میدون بارستان که تمام شد. بخاص بری تو شعبات اون نبش یعنی اولین دکونه دست را سفیابون شعبات یه ارمانی بود به نام ماتاووس که بنده در سال 1310 که اول بار منو بردن بذارن مدرسه مدرسه سیروس بود به جای اون مدرسه شادو نزدیکتر این مدرسه بود به خونه ما بردن بذارن این ماتاووس اونجا آبز و خروشه داشت با سال قبل از انقلاب هم همونجا بود و همون کرده باشد این آدم واقعا یه پیره به تمام معنا بود یه چند تا از این جبونا ها بعد از اون فیلمی بود که جیمز دین درست کرده بود که بعد هم کشته شد و اینا هایی اونش از این جبونا های آسوپاس رو از این گنگ های امریکایی که اون وقت را می اختیدن و مردم رو چیز می اینا اینا یه مش پیلو در ایران پیدا کرده بیدن از کنم که چند از این بچه لاتای چیز بودن که یه در بیرستونی مثلا کرده بودن سوادی داشتن چیزی داشتن ولی طبشون به لاتی و خراختاری و قارتگی متمایل بود و اینا یه دسته از اینا میان و دوتون میان در یکون مطاوس و آقا عرق بده، آقا آب جو بده، نبونم یک کیلو کارباس بده چی بده چی بده همونطور چیز میکنه بعدم میگه که ماشینم حالا روشن اوتومبیلشونم رو اونجا مگه داشتن یک کم فرد فرمی و بعدم میگه که اینا رو بده ببره و تو ماشین میذاره بعد میگه که راستی اون مثلا چهار تا آب معدنی میخواستیم یک جای دور دستریه میره ما بیاره اوز خود بابا هم را میفته و میشن تو ماشین میره این می گذاره. سال ها می گذاره. بعد از دو سال سه سال مثلا اون پسر فکر کنه که ما تا قضیه رو براموش کرده میاد اونجا که عرقی بخوره یا آب جوی بخوره با همون لحکه ارمنیش می گذره که مثلا ساروخان شما یه شد جنسی از ما بردیم یه ست به من داده بودیم یادتون رفت بابیشتی بگیریم باقیش اینجاست مثلا سی و چهار تومن سی هزار دعیشه باقی پل شماست اینو این بچه از خیجالت اصلا خوشت میشه و طبعا چیز میشه دیگه خیلی تحت تاثیر قرار میدید و نظاهر این رفتارا بسیار سر میزد ازش مثلا بچه های جوان های دکونه واده های اطراف اگه میومدن در دکونه این یه ای چیزی بگیرن تا پرسو توی مفصل نمی کرد که برای کی میخواد برای کی میخواد نمیداد بهش یا میگوسن برو بهت نمیداد میدونه که خودش میخواد چیز کنه اینا نمیداد چیز میکرد خلاصه یه آدم انسانه به تمام معنی با خب این نمونه ها در چیزام کم نبودن اینه که پیر مقان که میگه حافظ واقعا یه آدمی بوده که یه همچین صفاتی رو داشته در ضمن پیران سومعه ناچار بودن از یه مثال دو خونداری هیچ علاجی نداره بندم علاج بخوام یه اویه رهبری بگیرم بکنم مرید بگیرم. اینا ناچارم تظاهراتی بکنم یعنی یه کارهایی رو که دلم میخواد یا پنهان بکنم یا جلو مردم نکنم یا من دعوی بکنم که نمی کنم یه بازیه و درده و این خوب نیست دیگه این ریاض و ریا بالاترین گناه در اسلام و در هر دینی یعنی شرکه میگن شرک خفیست یعنی برای خدا شریک قائل شد نیست که نماز تو وقتی یک کسی اومده طول بدی و خیلی با تو معنی نو اینا بخونه وقتی کسی نیست خب این معنیش اینه که اون بابا ببینه که به بچه آدم خوبی چه مومنی چه نماز خوبی به جا اینا این در حقیقت اون آدم شریف که خدا کرده یعنی برای جلب و حسن نظر او عبادت چرت چهر که این خیلی یعنی بدترین گناه و البته کارش هم انقدر درازه که غزالی معروف میگه که ریا گاهی از رد پای مورچه بر سنگ خارا در شب تار پوشیده تری یعنی شخص خیال میکنه سالها ده سال مثلا که داره عبادت میکنه حقیقتا ولی بعد یه حادثه اتفاق میفته کشف میشه که نفس اونجوی آنج. بدون اینکه واقعا خودش چیز باشه. حالا من وارد اون جزیاد میمیشم در هر صورت پیر مقان که میگه یه نمونه های اینجوری در هر جامعهی وجود داشته و اینا رو مردم میدیدن میگه تشویش وقت پیر مقان میدهن باز وقت پیر مقان رو باز یعنی دوباره آشفته میکنن برای اینکه پیروان مبارز دینم هم جز همون راه خوشک شریعتی که خودشون قبول داشتن هیچ چیز دیگر رو تحملشو نداشت تشویش وقت پیر موقان میدهند باز این سالکان نگرد که چه با فیر میکنند سالک یعنی راهرو سرک یعنی راه رفتن و مجازم وحنی رفتن به راه تصففه و سالک یعنی مریده که میاد در راه تصفف برای اینکه که به میگه ببین این سالکان چه میکنن با پیرشون؟ پیر به معنی موسفیده اما از اینکه که زیاد باشه یا کم، اصلا و فردوسی در داستان تولد زال وقتی زال به دنیا آمد، بچه نوزاد یکی پیر سرپور آزاده ده. که چون اون ندید و نه از پیر سر یعنی سرشتی ولی چون معمولا سفید رو دنمون ملازمه داره با بالا رفتن سن بنابراین به آدم سال پرده هم پیر. اما معنی دیگر هم داره. اون معنی یعنی رهبر غم، رئیس غم، رئیس قبیله به خصوص رئیس روحانی رو بشن میگن پیر. و گاهی بعضی از این پیرات جوانن خیلی تشویش وقت پیر مغان می دهند باز این سالکان می که چه با پیر می کنند. صد آب رو به نیم نظر می توان خرید در فقط نسخه خلقالی نسخه که مردم قضیمی هست صد ملک دل به نیم نظر می توان خرید و به نظر من بهتره شاید احتمالا آخرین تصمیمی که حافظ گرفته اینه ولی در یک نسخه بیشتر نیست از نه نسخه مرمو در یکیش بیشتر نیست با اون نسخه از این قدیمتر از نسخه هر حال حالا یا آب روی یا ملک دل صد ملک دل به نیم نظر نیم نظر یعنی نگاه خیلی خیلی فعل سرسریه کتو 100 مولچدل به نیم نظر میتوان خرید 100 در مقابل نیم 100 توملچدل 100 اینجا قید کثرته یعنی بسیار مولچده چون اعداد گاهی معنی عدد به کار میرم وقتی من بگم که مثلا من 5 کتاب دارم یعنی 5 تا کتاب دارم. گاهی هم به صورت قید از که بگیم صد دفعه گفتم این کار رو بکنم صد دفعه گفتم این بسیار گفتم یا یه وقت میگم که من سن نار پول ندارم شاید صد تونم پول بگیرم بشه معنیش اینه که من کم پولم پس اعداد کوچک به معنی قید قلت به کار میره و اعداد بزرگ به معنی قید کسفت هزار دره در هزار پا، هزار پا، هزار تا پا که نداشت، یعنی دارای بسیار پا توی هست در راه خراسان، خراسان نمیست هزار مسجد یا آزربای جنگه ندارم به جغرافی اونان خراب هزار مسجد همینه ازی که تیران اینجای هست، هزار دره بشمیده هزارتو که نداری، یعنی بسیار دره داری گاهی حتی عددهای کوچک هم به صورت قید کهسات بکار میرن، مثل که بگیم آدم چارشونه آدم چارشونه یعنی آدمی که اندام درشت قوی داره بایله کسی چارشونه که نداره یا آدمایی هایی که عبروهای پرپشت خیلی درشت دارن بهشون میگن چار عبرو رای عرض کنم که یه لات بدبختی تو محل ما بود معروف به حسین سکله این سرش بزرگ و من مدت ها بزرگ شدم خیلی مثلا 25-6 سالم بود باید فکر میکرده همهش بکرده هم که این حسین پس اون دوتی کله دیگرش کوری کنید. اینا غیده. اینا هیچوقت عدد نیست. و این هم تو 100 ملک دل یا صد آب رو به نیم نظر توان خرید یعنی بسیار. خوبان در این معامله تخصیر میکنند. تقصیر یعنی کوتاهی کردن. قصور یعنی کوتاهی شدن یه وقت شما سر وقتم راه میفتید بخواد به سر کلاس هم همه پیش میارم می کنید ولی اتفاق دیر می این خصصور یعنی شما قصدا نخ... نخواستید که دیر بیاد. یه وقت نه بی مبالاتی میکنین و میذاین و هم میشین و بعد وقت میگذره و بعدم دیر می این تقصیر. یعنی کوتاهی کردن اون وقت تخصیل کننده میشه مغصر قصور کننده میشه قاصر قاصر یا مغصر قاصر کسی که کوتاهیش به اختیار خودش نیست و مغصر کسی که کوتاهی کردنش به اختیار خودش خوبان در این معامله تخصیل میکنن یعنی خوبان در این معامله کوتاهی میکنن. حالا دو بیت بعدی به هم چسب میده. میگه گروهی صرفتار جد و جهدن میگن وصل دوست با جد و جهد دست میده. گروه دیگر میگن که باید دید سرنوشت آدم چی هست.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 خداوند به اون منت گذاشته و توفیق بهش داده که خوب پشت حتی میگه این دستو بلند میکنی به درگاه خدا تک نکنی خودت کردی این سررشتش در عالم غیبه اون میکشن تو اصید میده بالا و برای اینکه خلق و عمر به قدرت خداست و هر کاری میخواد خدا میکنه و از بنده هیچ چیزی ساخته نیست اگر کسی، حتی یه حدیث هم هست در این مورد از سعید و سعیدون توی بطن امه و شقیل و شقیلون توی بطن امه آدم خوشبخت، خوشبخته در شکم مادر و آدم بدبخت، بدبسته در شکم مادر بنابراین عبادت کردن نکردن تأثیری نداره یعنی کسی نمونش هم ابلیس رو مثال میزنن که سال عبادت کرد ولی تقدیر خدا این بود که اون مردود باشه این است که در یک آزمایش راحت شد راحت شده ناخنش عکس قضیه هست کسانی که تمام عمرشون کارهای بعد کردن اینا ولی تون تقدیر الهی این بوده است که اینا سعادتمند بشن و درست از در دنیا برن با یک کار بحشیده شد این است که مثلا سعدی رو بخونید افتفاقا امروز یه چیزی سر کلاس درس میدهدم آخره باب عشتون در شرک بر آفیت قصه بوت سومنات قصه شبگی داستان پولیسی یادین حرفا میگه رفتم در بوتخانه سومنات و بعد کم زیادی مردم اونجا هستن و چی هستن و چی هستن و بعد به یکی گفتم که آها این مردم این که از سنگ این مقنیم این چشمش رو از کهربا ساختن اینو چه معجزی میخوان ازش این چی چیه اینا دیدم که خیلی به من چپ چپ نگاه کردن اینا بعد گفتم که ببخشید من قریب هم نمیتونم شما من دارم تحقیق میخوانم بیدم تو خیلی که اگه اینجوره پس تو بمون چپ, چپ اینجا باش پرد و صبح میبینی که چرا مردم میگه من شب موندم و صبح سهر دیدم که مردم آمدن از این وقت رو از, از, از پر شد یه مرتبه دیدم که این بود دستاشو بلند کرد طرف خدا برای اینکه میدونید که حتی در قرآن هم که از بود و بود پرستی صحبت میشه میگه که وقتی که میپرسیم از بود, بود پرستایی که اینا چیه شان پرستیم میگن ها اولائه شفعا اونا ایندالله ما اینا رو مزد خدا شفی میریم اگر نه به خدا مسقد بودن فکر نمی این بود خداست من حالا قبل از اینکه این بحث ادامه بدهیم، این اولمهجنه که نوشتم برای این اولمهجن سقفی جز قهرمان های داستان های یه داستان عوامانه ای از به نام خاورنامه نامه که قهرمان اولش مولای محتقیان مرتضی علی است جنگ با دیب و جاغدو و قشده ها و با این خیالی است همه و دو نفر از نزدی سردارای علی هستند در این جنگ ها یکی مالک عشتره که توی این شده مالک عجدر به یکم عبالمهجن سقفیه که شده یه نوشتم توضیح ندیدم حالا برگردم سر کار خودم میگرفتم پرسیدم و گفتن و داددم دیدم که این بطه دست بلند کرد و مردم تو سر گذن گریه کردن و چی کردن و کردن من دیدم که خب اینا گمراه هم که منم باید حالا چیز کنم به دروغ با اینا همراه شدم و گفتم بله بود دیدم و چقدر خوبه و اینا و مدتی امین اینا شد بعد یه شب موندم در بودکده و بعد وقتی خلوط شد داره دیر رو بستم رفتم این ورانگر گشتم در اینجای پرده ای هست پرده رو که کشنه دم یه کشیش یه برحمن اونجا نشسته ریسمونی هم دستشه و قصه روشن شد می‌کشته و این بود دستش می‌درسه هوا بعد دنبالش حیلی داستان پولیسی می‌چه که می‌گه که بعد این که دنبال من کردم من دنبالش کردم و بردم و انداخانش تو چاو سنگ زدم تو چاو کشتمش پدرش در آوردم برای اینکه اگه زنده می‌مون می‌خواست سر من زیر آب کنه و من چه کنم چه ک کنم بعد میگه که من از این پهند ها برفتم یکیش است که وقتی که خودم دست به درگاه خدا بلند می فوراً فورا اون بط یادم میاد. اون بط رو یک کسی اون رشتر می کشته این دست می رفته من منم اگر دستم به درگاه خدا بلند میشه این توفیق الهی است که خداوند به من داده که من میتونم دستم بلند کنم. بعدم میگه میگه در خیر در نیفوکاری بازه ولی همه کس بیان گندرن گروه این تحقیق رو نداره برای این طرز تفکر اون روزی بوده بنابراین اگر میگینید که میگه قومی دیگر حواله به تقدیر میکنن خیال نکنید که میگن که بگیره بیشینه خودش میاد نه میگه گروهی معتقدن که وصل دوست با جد و جد دست میده گروهی دیگر هم میگن که تقدیر در این هم خیلی محسد. ولی با همین حرفا فیل جمله فیل جمله یعنی خلاصه اعتماد مکن بر ثبات در جمله اصلا یعنی چیز کوتاه کتاه ترین واحد سخن جمله است کلمه که نیست ما هیچ وقت در هیچ زبان در دنجا نمیدیم در نمیدیم آب هیچ را، کتاب. کتاب اولین چیزی که می‌گیم یه جمله است، می‌گیم در را بدم کتاب را حتی اگه یه اشاره بکنیم با اشاره هم بگیم این اشاره معنی یه جمعه را میگیم. پس جمله یعنی کتاحترین واحد سپن اجمال نگاه اجمالی یعنی نگاه به به کتاحترین خاسته جمله یعنی به طور مختصر به طور کوتاه یعنی خلاصه واهیدست کلمه نیست و دستوری که منظور دکتر خان از دکتر خانلری نوشته از همین شکلی از جمله یه جمله چه عن برای اینکه ما در زبان جمله ما جمله اجزا داره اجزاش میشه مثل وجود آدم، که وجود آدم یه آدم درست هست دیگه ولی برای اینکه بیشتر به فهمن میان دستگاه گردش خون و جدا میکشن به شما نشون میدن که این جریان خون از اینجا میاد و میره تو ها و میاد تو برید و میره تو ریه و, و میره تو بدن رو برمی بر گرده چه میشه چه می ولی این دستگاه بیهون که وجود نداره که. یاد هستای گوارهشو نشون میدن که بله دهان هست و میری هست و میده هست و روزه هست و روده کچیک و, و روزه بزرگ و کچه و کچه این که بیرون جدای که وجود نداریم نه همه با هم کار میکنم تو زبانم کلمه تنهاییش اشراف کار میره اگرم به کار بره به معنی جمله مثل اینکه هم من بگم در یعنی دره ببن حتی اشاره بکنم بازم یه جمعه بعد شروع میکنه که چند جور جمله داریم بعد شروع میکنه که اجزای جمله چقدر شد در حالی که دستورهایی که پیش از دوتر خانداری نوشته بودن همه از کلمه و از حروف و از زیر و زبر رو نشروع میکردن و بچه تا برسه به جمله اصلا گمراه بوم شده باستن و همین دلیم هیچ وقت یاد نمیگیرد فل جمله اعتماد مکن بر ثبات در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 یکی همه هر اشکال و عیلی که هست به خودش نسبت میده برای اینکه دیگرون بفهم یا خودشو قطی اونا میزن میده که شیخ به همون معنی که گفتم معنی تصفی شیخو، حافظو، حافظ و مفتی و مفتی یعنی قاضی کسی که فتوا میده مفتی از فتواست محتسب یعنی بازرس شرعی اینجا براتون بگم یکی از بهترین کتابهایی که وجود داره واقعا و اصلا عربی است ولی ترجمه پارسیش شده و منتشر شده کتابی است که اسم عربیش هست معال ملقررب یا احفام در احکام محتصیب این تحت عنوان آین شهرداری ترجمه شده به وسیله دکتر جعفر شعار دوست و همدوره عزیز ونده و خیلی کتاب در جلیبیست در ظاهر وظیفه محتصیب شهرداری محتصیب چه وضعی ولی میگه مثلا محتصیب تمام کار شهرداری مثلا این که کسی ساعت معبر کن راه رو ببری مثلا نه کسی کم فروشی کن با ازرسی بکنه سنگ های مردمو مردم رو که کم نباشه با ازرسی مواد غذایی نمیدونم انواع اقسام این کارا و در ضمن اینا تغلبهایی که میکردن و کارهایی که می شده اینا هست تو این کتاب و از نظر اجتماعی برای که ببینیم که زندگی جامعه در 6 هفتصد سال ه هفت صد سال پیش چه جوری بوده؟ و چه کارا می کردند؟ مثلا چه تقلبایی قایی چجور کردنن بازی میوردن کم فروشی چه بوده سایر کارا چه بوده ؟ خیلی کتاب مهم است. و حتما این کتاب رو بهتون توصیه میکنم بخونیم و اینکه با برد جالبه و مثلا بعضی چیزا هست که ها می بینیم سابقه چند صد ساله داره گوشت رون گاوو رو میگیرن میپذن بعد جیشیش میکنن کتاب کتاب جیشیش میکنن میدازن تو آب زرفرون رنگ که می میذارن خوش میشه میزنم این قاطی زرفرون توی هم نداره فقط یه مثال زرفرون رو میکنن دو مسخل سهمیت این نداره بله بله علام میکنم بند دیوان خاقانی رو میخونم کاقانی در حدود سال 600صد مرده یعنی 8 15 16 سال این آدم مرده تو شرشیدم نوشته که هر جا که نوگلی خسی خصی هم حریف آری، گوشت گاب او بار ضعفر رو <تص people> <تص> <تص> گوشت گاب بار ضعفرون ضر ممسثر بوده در دوره یه خاقانی یعنی این انقدر بوده که ضرب وصل مثل شده مثلا کادر گل از خارم هست میگه گوشت گاو بار زعفرونه اینو همزه تو شعر تو شعر خاقانی حالا از کی شروع کردن این کارو چند روزم ادامه میدهن خودام نخ روی یه باید بذارید مفتیو ها بنابراین محتسب به اسم از احتساب و احتساب یعنی بازرس شرعی و هم یادم دوره بچگی ما سفورها رو میگفتن احتساب برای اینکه اسم محترم میگذارن در ضمن سفور هم که میدوند از سویپر انگلیسی اومده سفور یعنی جاروکش بل اول از جنوب چون در جنوب انگریسا نفوز زیاد داشتن جاروکش شده سویپر سویپر کم, کم اومده بال اون مرسی از اون صرفاً یه که دینی؟ نه، اون رحور دینی ده. ولی خب از مختیگری شروع کرد نه، دید. اون که اعظم رو تیزگیره ایسی کل مثل غازل غزات غازل توی سی پول کل ها بود یعنی رئیس قبعه نه تغییر اینجا کردن نه کارخانه تغ... رو تغییر کارخانه تغییر نمکنه تغییر میدن تغ... تغییر کردن تغییر کردن یعنی تغییر دادن میده که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تذویر فن زور در عربی و یعنی دروفه و مزدبر یعنی دروفه و تزویر یعنی دروفه البته یه نوع ترشیگی هم از مزبر بهش میگن یه نوع آشی می با آشیم و یه وقت حالا این کسر رو برمیگه مزدربه مزدربه زور یعنی دروفه تزویر یعنی دروفه مزدبر یعنی دروفه و سعی میکنم اول که آب من خیال می‌کنم، حالا گذشته از این من مرکدل و ترجیم می‌کنم، که یک نسکر می‌شهر نیست ولی ترجیم خل، خلق خلقیه، باید این ده دوازده‌های غزل‌های درجه‌یه که همینجور تمام پوست دارم باید، واقعاً یکی از اینجور، خم حافظ همین‌طور هم هست حافظ همین طور هم هست سایب میگه سایب مرید حافظ بخیر میگه حالا که حسن خداداد او شوم معشوقش میگه حالا که حسن خداداد او شدم که سراپا چه شعر حافظ شیراز انتخاب نداره شعر حافظ اون انتخاب نداره دهتان بشتر، تقریباً یه پیستای غزل پشتر هم هست همش یکی از یکی بشتر خب، بخون جانم رو نه نه، کار یعنی محل کار هم درست به همین معنی امروز منطقه ها اون وقت ماشین و موتور به این صورت که نبوده که مش کارگر بودن برای دستی بی معنی مفکچر امروزی میشه گفت کارکنان دنیا رو میگه دیگه دنیا میگه کارکنانیست که دائما در حال تغییر. منطقه هایش خیلی اشفاد باشیم. لاغل نوات دسته هست. بله. الان ما توضیح بدم. بله بله. عرض کنم که متاسفم نخیر. در چیز در ترکیه کارخانه معنی چیزی گیر افتادی اونجا؟ <تص> اونو میگن بوحشکتری آز میگن کرهنه دران ترین خیلی کرهنه چی گفتی؟ دران تو برسر آفترشتی من دونن کار ندارم یکی بالی، بالی این صورت اتفاقه که بچه‌ای هم تعریف می‌کنه که رفته بود اونجا خب اینا پرتروسو بعد میفن در بر ترکیه اینا رو تحویل می‌گیرن روی چیزای پان‌ترکیسم برای تقریقات پان‌ترکیسی و اینا که خیلی هم چیزه یه عده‌ای از ساستیک‌های ترکیه اینجا دخونی هم راه انداخته بودن دکتر هیئت اونم درام سال اینا ماشی می‌دادن چیز نمی‌کردن مگر خود اون مسائل نده به صدر افضوز نشسته بود و استاد اومده بود و بعد پرسیده بود از هر کسی که من چی اونا بعد پرسیده بود که خب بابای تو چکار میکنه؟ اینم میگه کرخنه بار یعنی کارخونه داری بعد این از کلاس که بیرون میونه بچه ها هیچ باش حرف میمیتونه اصلا هرچی این بر می اومد میگه میگه کنار اصلا روشون رو بر میگه تا بالاخره بعد چند روز یکی روی چی میگه یه خب هیچی تو وسایل بیشرفانه این بارو ماهاش میکنی به قول قانون انتخاباته نوشته بودن که از حق انتخاب کردن انتخاب شدن محروم یکی هم کسانی که وسایل بیشرفانه این بارو ماهاش میکنه یعنی هم با حال بعد بالاخره معلوم میشه که چیه. بله اون میگن خابیک لامپ چیزم لامپ روشنایی رو میگن آمپول بلیخ نزله قول او بسیار زیبایی است و من نخ از خیلی جوانی از زیر 20 سال دین حبس دارم. صاحب بی و ساقی خوش دو دام رهن که زیرکان جهان از کمندشان نرهند منار چ عاشقم و رند و مست و نام هزار شد یاران شه می‌گنم قدم منه به خرابات جز به شرط ادب که ساکنان درش محرمان پاکشه جفا نفیشه درویشی از راه راقبی بیار باده که این سالتان نمرد ره هم مبین حقیق که دایان اشکا که قوم بسروبان بی هم مکن که کوکبه دلبری شکسته شود چو بندگان بگریزند و چاکران جهنم غلام حمد دردیکشان یک رنگ هم. نه آن گروه که از رقل باخت دلسی هم درنگ هم. به حوش باش که هنگام باد استقناه هزار خرمن طاعت به نیم جو ننهم جنابش جناب عشق بلند است هممتی حافظ که عاشقان ره بی همتان به خود ندهن میگه شواب بیغش و ساقی خوش این خوش در حافظ خیلی میاد و هزار تا معنی داره، در حالی که پیش شعرهای ناشی بدتر از بنده این خوش جزو پار آجورهای یعنی هر جا کم میارن، یه جا بزمی کم این خوش و بیدل و، نمیدونم، همثال اینا اونجا رو پور میکنن. در حالی که توی حافظ، کاملا مفهوم داره و مفهوم بسیار بلندن داره ساقی خوش یعنی ساقی که همه شرایط درش جمع هم معرفت ساونگری داشته باشه هم زیبا باشه هم نمیدونم هیکلش ان با اصلا دیگه چیزی کسر ندشته باشه شراب بی قشم که قش یعنی آمیختگی اینه علاقمند بشه مخصوص یعنی چیزی که در حقیقت آمیختگی قش آمیختگی چیز اندتباه هاست با چیز گرانباه ها درست مثل زعفرانی که عرض کردن که گوشت گاب رو میزن توش به قیمت زعفرون میفروشن این میشه مخشوش <تصفح> یا مثلا نقره قاطعی طلا می کنن به قیمت تلا میتوشن میگه این نوود درصد مثلا ایارش نووده ولی نوود میشه هشت مثلا نمیدونم انواع اخسام هر چیزی که چیز ارزونتر رو بزنن دستش که به قیمت گرونتر نفشنن میشه قش و شراب قش یعنی شراب خالص شراب خوب بیگیرات شراب بیقش و ساقی خوش یه دوتا دامراه هن که هیچ زیرکان دنیا هم از کمند اینا نمیرن همه ی آدم های هم گیر اینا می افتن به ایت تنز بسیار بسیار قشنگی داری و همیشه تنزای حافظ تنزای ملائمه نامحسوسه که آدم باید دقت بکنه تا ببینه که من هرچه عاشقم و رند و مست و نام سیاه حالا آدم که حافظ قرآن قران در 14 روایت از برمیخونه از علمای بزرگ روزگار خودش موسیقی رو به حد کمال میدونه خوشاوازه این ذوقو داره با این شعر این چجوری میتونه صبح تا شب عرق بخوره شب دست به شمیران گیره نه نمیشه که هم چیزی ده. با این حال همه اون چیزای بدو به خودش نسبت میده به میگه که دیوار بیستم من هر چه عاشقم و رند و مست و نام سیاه هزار شد که یاران شهر بیگونه هم الهم آخه گرفتن از مردم یکی از اشکالات بزرگش اینه که چشم عیب دین خود آدم رو میبنده یعنی وقتی ها چشم شما همش باز بود که این یکی چه داره، این یکی چه ایداد داره اون یکی چه داره، اون یکی چه, داره،, اون چه, داره،, اون چه داره، کسی که این وسط فراموش شو خود آدم <تصفيق> که البته هیچ <بیش> اشکالی نداره هم <تصفيق> داره <علمانده> و اگر آدم چشم بین دیگران رو ببنده اون وقت چشمش متوجه معایب خودش اینه که اینجا پاپس این نکتره میخواد بگه. که خب مردم که بیگنا هم همه شون الهم دارید داره من هم که این وسط عاشقم و رند و مست و نام نامستی هم برایت اون نامه عمله که کرامل کاتبین می نبیسن کرامل اسمش در قرآن آمده گویند که دوتا فرشتن یکی بر دوش چپ نشسته و یکی بر دوش راست در تمام دوران زندگی هر کسی اون که بر دوش راست نشسته اعمال خیر شخص رو می و اون که بر دوش چپ نشسته اعمال بد شخص می نمیسه. و روز قیامت که اشخاص انگیخته می شن اگر نامه عملشون دست چپشون باشه گناهگارن بازشون خراب می اگر که نامه‌شون دست راستشون باشه، بایدشون مردتر و نام سیاه می‌گه کسی که نامه عملش از اون دست چپ تا پایین سیاه شدید هر دو شد خاتبین دوته خاتبین، جمع می‌گید من هرچه عاشقم و رند و مست و نام سیاه بزار شد که یاران شهر می‌گونند قدم من به خرابات خرابات رو در مقابل خانقاه حاجی میگیره. این که نه با یه نه آخر آخر رند و خودش هم که به کار می‌بره مردم اونو صفت خوبی نمی‌دونستان. اینجا با بار مرسی به خرابات خراباتو در مقابل خانقاه بکان می‌زره و اونجا جای که آدم خراب بشه. البته اینم بسیار حرف زدم، مقاله‌ها رو مفصل نوشتم که حافظ با مذهب مهر آشنایی داشته، اصلا شاعر مهری بوده، مولانا مهری بوده، برای این که در دارما اصحاب مهر درجاتی هست و ترتیباتی هست. و ها و لقبهایی است که خیلی شبیه به دستگاه عرفان ایران. و هیچ جایی نیست که اون افکار نفوذ کرده باشه من غیر مستقیم به دستگاه تفکر ایرانیان بعد از اسمان. اما مذهب می، یعنی میتراизم هیچ وقت در ایران مذهب رسمی نبود هرگز و اصلا این در حقیقت بزرگ کردن ایزد مهره که ایزد مهر از ایزدای قدیم پیش از زردوشته که وقتی که زردشت آمد اهورام ازدارو به عنوان خدای یگانه مطرح کرد ولی بعد از این که زردوشت درگذشت به قدری این ایزد نفوز داشت که در پایه های, های که بعد نوشته شد یک فصل بزرگ هست به نام مهریشت مهریشت ستایش این ایزت می رو. و بعد این میتراییست در دوره عشقانی میدونید با عشقانیان چیز بودن عشقانیان عشایر بودن یعنی حکومت ای بوده و در اسلام هم بهشون میگن ملوک و توائف. که بعد برشن ملوک و توایف و ترجمه فیغو دلیته اروپا گرفتم این دوتا با هم خیلی اختلاف داره به هم ربطی ندارید ولی خب اینجوری ملوک و توایف یعنی پادشاهانی که از قبیله ها میادن فیغوه ها و قبیله و عشیره خاصیتش کوچه اینا جایی ساکن نمیشدن در نتیجه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 شما توی اشایر اصلا زن بدکاره نمی بینید برای اینکه فرصت این کار اصلا نده هیچ از صبح صبح باید چهار بلند شد چه؟ و کار داره تا غروب که بیاد و وسائل دوباره اصلا پنگ کن و مرفق کن خود مرداش هم این کوچ داستانی واقعا از اشکال دوشگاری این است که یکی هرزگی در اونجا نیست یکی هم رعایت مقررات مذهبی به اون صورت که در شهر هست نیست اینا اکثرشون چیزی از دین و اینا نمی‌دونند سرجا ملک هم تو تاریخش می‌نمیسه که مردم و اشاریر و اینا چیزن، خیلی چیز ندارن، به اصطلاح اطلاع مذهبی هم زیاد ندارن و یکی از این خانهای و یکی از این قبایل می در شهر، در مشکین شهر پیلی که قبلا قیاب میگفتن گفتن پیش یه حاجی عطاری قند و چایی و تو کنچ و فوق و مایه تا چی می برای به این حاجی می که تو یه شب بیا اینجا شما ما مهمون ما باشه خیلی چیزه من میام اینجا پلک رو مثلا شاید نهاری چیزی هم بشته بودیم میخواست جاگان بعد میگه که، سرجا ملکه میگه که کسی قرآن بکنه، فکر کنه کسی مرده مثلا جز در مراسم مردنه کسی، هیچکس قرآن نمید یکی الاخره بعد از مدتی اصلاح خان، حاجی شب میره یه شب میره و بعد محوم میشه و خیلی عزت و اعترام، سفره از این طرف تا اون طرف و ادریز داده و دعوت کنم خیلی تعبیل میگیره حاجی رو و تخت خواب پاکیز و رخت خواب یعنی، هفته خواب چرزیم چادر زداغانه و تمام این حرفا و حاجه میگه من صبح بلند شدم و قبل از نماز صبح رو گرفتم و نماز کندم و بعد هم عادت هم بود که یه حزب قرآن یعنی یک چهارم یه میگه جزق قرآن یک سد و بیست هر روز بخونم، اصلاح بودم. یه شروع کردم، یه قدری که از این قرآن خوندم مند یک چیزی محکم خود به سره من. برگشتم دیدم که زن حاجی اومده که مردی بیده از زلطم این کسی مرده تو اینچه ده که قرآن خانم یه دفعه میدو و میاد و خلاصه زنها که دعوان میکنم که برو و میتربیت رو نمیدن خلان اینا میگه حاج آبا خیلی ببخشیم زن نادام بود میتربیت بود جسارت گرد خیلی میبخشیمش اما آخه شما اول باید تحقیق می‌کرد این چیانا بر رو رو آن <تصفيق> از خونم که این زندگی عشایری اینطوری بنابراین خود اشکانیان بزرگترین تهمتی هم که بهشون زده می‌شد در دوری ساسانی که حکومت ساسانی اصلا حکومت دینی بود حکومت آخوندی بود و اولین کاری که اردشیر کرد هیئتی تعیین کرد برایه که عوستار رو جنواری کنند از این مسلکی. و دنبال حکومت صفویه اینان تا هم کار موبدان و همون محکومت محصبی ساسانی رو دنبال کرد برحال اشایر فهمت که میزدن این بود که اینا دین نداشتن در دوران اینا اوستا از بین رفت چنین شد چنان شد و حال اینکه که مقتضای زندگی اینا این پوری هست که چیز ندارن هجاب مثلا ندارن زناشون ولی این نشونه هیچ چیزی نیست و حکومت هم اصلا هیچ کاری بکارشون نداره ولی می‌دونه که اصلا نمیشه اونجا نه، نه اون چه بوده هم در زندگی یاد می‌داره شاید یه مقداری هم یک کسانی بودن که دفتر دستکی داشتن ولی به طور کلی اصلا چه در آن حکومت اشایری که خیلی مشکلتر چه در حکومت مستقر شهری تعداد با بسیار بسیار کم بوده یعنی علاوه بر این سیستم کارس بوده یعنی یه ای اصلا حق نداشتن ثوادها باشن داستانی از در تاریخ تبرستان ابن سندیار میگه که یه وقتی انوشیروان محتاج شد این مقاری پرو قرض کنه برای جنگ یعنی داره گزافی. بعد گفتن که یک کفاشی هست، کفشگری، این خیلی سربتمنده و حاضر که بوده و گفت بیاد و آمد و گفت خوب شنیدم که وضع تو گفت به دولت پادشاه بله در سایه عدق پادشاه هم وضعم خوبه گفت ما مثلا اینقدر احتیاج داریم، می‌تونیم آقا قرض بدی؟ مثلا بعد از سال، دو سال هم بهت برمیده که اینقدر و دو برابر رو گورم اگر علا عذاب بخوان بنده نه تنها قرض میدم بلکه تقدیم میکنم و عوضم نمیخوام نمیخوام برگردم فقط یه استعداد دارم یه چیه میگه من یه پسری دارم با استعداد و چنین و چنان و فلان و این طور و اون همه این کرده شما اجازه فهمید اگر قابل بود اگر لیاقت داشت، اگر توان اجازه بفرمایید که بیاد جوزه دبیران اونجا مشغول کار باشه این نوشیدوان راحت می‌کنه بیگه این کسی که نباید تو این طبق باشه، این نمی‌تونه بیاید با پول هم این کار خدید سیستم فاست بنابراین تازه حکومت هم چیزی نداشته که تصبر رو بر فراموش کنه به علاقه اصلا مدرسه تا در ایرون تا 50 سال پیش در اروپا هم تا پیش از رنسانس مدرسه یعنی آخوندی، اخوندی فارسیرا یعنی مدرسه دینی و مدرسه دینی دو دسته تربیت می‌کرد یکی کشیش جماعت بوده یکی هم اولیای دولت رجال و نام شاگردای همین اخوند بوده اونجا یه مقدار سواد یاد می‌گرفتم برای کار خودم رو شکرا بعد که دانشگاه شروع میکنه جدا شدن و رنسانس به اصطلاح میاد در ایران هم مدرسه هایی غیر از مدرسه های آخوندی شروع میکنه که تحسیل شدن که مال ایران از محصفیت یا چه ساعت سالی ساعت ساعت ساعت درست سالی. قبلش نه در ایران نه در اروپا در چین در بیتنام در هر جای دنیا مدرسه جز مرسید بینی هستم نباشی بعضی دستامان قدم من احبه خرابا ادهی نوشتن که حافظ بل مهری بود و چه بوده و چه بوده و خرابات هم اصلا خراباد بوده یعنی خرشیداباد بد شده کم کم خرابات اینا توهمه و خیاله هست. خرابات به سبک عربی شاید عربی هم نیست این الفوته هم شاید یکی از علامت های جمع در فارسی هم بوده است برای اینکه از قدیم در نواهی فارس اینا مثلا می گفتن جنگلات بوانات یه مشتحات خوش آب و هوای فارسه که خودشون میگن بوونات، ولی بوونات بوانات امثال اینا زیاد بوده و خرابات هم ممکنه همونطور باشه و به هر حال اینا جاهایی بوده که قرابات چمه خرابه است و اینا معمولاً خارج شهر بوده و معمولاً جاهایی بوده که کمتر توجه رو جلب کنه برای اینکه کسان میرفتن اونجا این مطاری آزادی عمل داشتن و یه کارهایی کردن که میخواستن می بزنن بنگی بخورن اصلا کشیدنش که اون وقت مرسوم نبوده یعنی دود کشیدن اصلا بعد از کشف امریکا به وجود میاد اصلا پیش از که امریکا کشف کشه هیچ دود توریه آدم پرو نرفته زده برای کی اصلا اونا سرکوستان امریکا توتون و چپاو میکشتن و این میاد به چیز میاد به اروپا و از اونجا میاد به آسیا و مثلا در ایران در دوره صفویه، رساله های متعدد نوشته شده در مجاز بودن یا حرام بودن شرب دخان به قول یعنی دود کشیدن شویده شویده. نمی کشیدن کشیدن نبوده اصلا یعنی دود تو سینفورو بردن نبود. و اینو وقتی که اولکایی ها امریکا رو کشف میکنن از اونجا این عادت زشت رو یاد میگیرن حالا اونا هستیرن و امریکایی ها سعی میکنن که این از سر خودتون باکنن و هر حال بعد شویده مثلاً شویده میخوردن میل کردن بنگ هم میخوردن میده که مثل دوب وحدت درست میکردن میخوردن بنگ اصلا نوع خوردنی این هشیشی کشیدن بعد اول توتون آمد بعد سایر چیزا رو اومدن امتحان کردن دیدن که هشیش رو با چپو و سیگار اینا میشه کشید چپو هم یعنی که تو ایرون چپق چاق میکردن هشیش میشه یعنی زدن چپق سواری <تصفيق> عرض کنم که تریاک ممادن امتحان کردن به همراه توتون نمیشه کشی اون وقت یه وسیله دیگری درست کردن در سایر نقاط دنیا به غیر از ایران با شعله شم یا شعله می میکشن که 1200 درجه سانتیگراد حرارت داره و بسیار مزره با نگاری میکشن با اون وسیله که در ایران شیره رو باون میکشن نگاری بشن در چین اونجاها تریایی که میکشتن با نگاری میکشتن و با چراح. تو فیلم ها دیدیم و تنها جایی که با رو درست کردن و با زغال یعنی هردت قرمز که 600 درجه کشیدن و در نحجه بسیار این سالم تنین نوع به کار بردن مواد مخدره. در ایرون بوده و کشم listingsktون بازم بوشین کایم چه که به توسعه یکی به خاطر تو به از این مسائل فیلماتاری بله بازم بازم زمینه‌ی اقتصاد بله درسته اینو ما خرجش آزمایشگاه هستن بله این همه این همه این حقوق بشری حرف مفت مزخرفه البته اینکه بشری حقی داره بسیار حرف درستیه ولی فاسدترین حکومتی که بیش از همه در حقوق وشن در شو عربستان سعودی. یه وقت دیده شده یا شنیده شده که امریکرا یا جای دیگری از گل بالاتر به حضرت عربستان سعودی گفته بنابراین همیشه ایرانه که حقوق وشن در میشه دلیلش هم اینه که ایران فعلا خار راه ایناست قابلم هر جوری کردن که چیز بکنن نشده در ذهنم برای اینکه این تصورم از ذهنتون بیرون بکنم که بعضیا ممکنه فکر بکنن که خب اگه ایران به خاطر روابطی درستی یعنی آخوند ده دست از ده گوشون من هیچ عبدا اگه با آخوند بجوشون هم الان هم داره میشه بجوشونانم تو که 400 یه قطره از آب گوشتمان و اونا قاطی نمیشه. اما تصور نفرماید اگر این حکومت دینی این لایپوزیفیتر دستور داره و به یکی خیلی خوب ایشونیم مثل تا حریف مساوی با هم رابطه برقرار کن رابطه داشته باشیم اینا میخوانیم نمیخوام. دلیلش ساده است ترکیه از گل بالاتر به اندیکا ندود پایگاه هوایی بشتید به پیمان ناتو پیوست همه این پرار رو کرده بل انگاه اصلا این کار کرده تیمانه ده باشه همه اینا هیچ وقت که گروهگان هم که نگرفته هیچ که نگرفته. لیره ترک 100 برابر بلکه 300 صد برابر ارزشش کمتر از ارزش ریال ماست در اون ناهیه اون دور تا دور که نگاه کنید اراق و ترکیه و روسیه و روپلشو همه اون جهار که نگاه کنید پول ما باز محکم ترین بود آنابرا امریکا برده میخواد و نوکر میخواد و گوش به فرمان میخواد. حالا اینا یه کارایی میکنن بای بخردانان نیست باهی مورد انتقاد ما واقع میشه ولی فکر نکنید که اگر فردا کسی اومد و خاص با اینا ها به گاه تصابیر میشین حرف بزنه اینا زیر بار مین خ خ این نیست برهاد. رفتیم یه جاهایی که نباید می‌رفتیم، ما حافظ داریم، درست <تصفيق> خراب خرابات، یعنی جای آدم‌های خراب. قدم منه به خرابات، جز به شرط ادب این حسره. یعنی نمیگه در خرابات به شرط ادب قدم بگذار. و اگرم یه وقت به شرط عدب قدم منعیزاشتی، خب اشکالی نداریم، نه. میگه فقط به شرط ادب میتونی قدم به خوابات نه اینو بهش میگن هسر و این جز عدات هسره و برای تأکید بکنه یعنی کلامش خارج به این ترتیب معکیت میکنه میگه غیر از به شرط ادب پا در خرابات نظر چرا که ساکنان درش محرمان پابچن. پادشان پادشان اینجا مراتب الناس اینجا نزد دکتر این است که اینا مردم به خدا هستن. هفت نه صد. به شکل یک نه، تو خرابات اون نشستن، اینکه چراه میرن، علا متنی به علاوه این عرض کنم که سه و سه 36 و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 اگه بود سالکان رهش اون یه چیزی بود ولی بعد هم سالکان در بیت دیگه میاد و تکیف هم معلوم میشه جفا نپیشه درویشی است و راه روی راه روی یعنی همون سلوک یعنی فیمودن راه تصبح جفا نپیشه درویشی است و راه روی بیار باده این سالکان نمرده رحم سالکان یعنی راهرو یعنی کسی که راه طریقت به راه تصرف میگه که درویش اول کارش که جهانه نباید به کسی بکنه یعنی به صفات الهی به صفات מלکی میخواد متصف بشه و چطور ممکنه به کسی بد بکنه اگر کسی بد بکنه به کسی این حتما درویش دید. و من ره روم. این به خلاف اون است که پشت قدم بوشت. این است که میگه که جفا پیشه درویسی و راه روی نیست بنابراین باده بیار برای این سالکانی که من میبینم یعنی کسانی که به راه خانقاه میرن اینا اینا مرد راه نیستن من بین حقیر گدایان اشباه بزرگترین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 کمر اون است که ما حالا بهش می کمر بند. و اونجوری بهش می کمر که الان کمر بنده درد میکنه اونو بهش می گفتن میان. میگه کمر شوخ چه بندی به میانن در تن. ترسم آسیب رسانت به میانت کمر را. این است که کمر، به معنی کمربند امروز کلاه هم کلاه کلاه کلاح رو جز آدمای خیلی برجسته جامعه سر نمی‌شه یک چیزی واسه می سرشون که هم شمدیشون بوده هم دستمالشون بوده هم لواقصشون بوده هم زیر اندازشون بوده و در داستان رستان و سهراب تردوسی می‌فرماید که خسروان به شهر سمنگان رسید خبر زود به شیر بلیخان رسید چیه بلیخان یعنی همون فرمانروای سمنگان پذیره شدن داشت بزرگان و شاه کسی تو به سر بار نهادی کلاه کسانی که کلا سرشون میذاشتن رفتن به استفاده رسون بنابراین میگه اینا پادشاهان دیپلا هستند و خسروان بکمر الانم اشخاصی که نفوذ معنوی زیاد دارن اینا میگن سلطان و بیتاج و تخت یا پادشاه بیتازه تخت فلان جا و درویشا که دنبال چیزشون دنبال لقب اجشون شاه میارن صفی علی شاه و رحمت علی شاه میگم او غلی شاه و پشم علی شاه این شاه معنی همون سلطه معنوی و به اصطلاح نخوض باطنی رو داره من بین حقیقت که دایان اشراکین قوم بی کمر و خسروبانوی کله هم مکن این مکن یعنی از همه این کارهایی که تاکنون کنون میکردی چشم به خوش لابد خطاب به کسی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 که او رو از چشم بعد و از افرادی که صلاحیت ندارن با ما حرف بزنن پرفزنن، محافظت بکنن که در دوره حافظ بینامی گفتن رقیب، رقیب به معنی همچش، و معنی رقیب امروز نبوده رقیب به معنی محافظ و مراقب بوده اون پیرزنی که دنبال دختر خوشکر میکردن یا اون نوکر پیری که دنبال پسر زیبا میکردن، او روش رفتن رقیب به هر حال دلبر کسی که بازار حسنی داره بازار حسن یه مش خریدار داره و هر چی حس قوی تر باشه این بازارم هم پر جوشتر و گرم تره اون کسانی که دوروبر معشوق بودن اینا رو میگن کوکبه کوکبه یعنی اطرافیان رو عرض کنم که میگه نکن این کارو مرادش اینه این که جفا نکن که کوکبه دلبری شکسته شود اون جمله بعدی اول باید بید اینجا وقتی که بندگان به گریزند و چاکران به جهند در برند دیگه کوکبه دلبری نمید مکون که کوکبه دلوری شکسته شود که بندگان گریزند و به بجهند غلام همت دردیکشان یک رنگ گفت دردیکشان تغییر و پایین ترین طبقه میگو ساران بودن که صاف سر رو که نمکنستن بگیرن که هیچ از شراب متوسط وسط خوام هم نمی کنستم بخورن این دو اونا رو اونا رو می کنفتن دوردی کشم میگه گلام هممت اونا هستم که یک رنگ هم. نه مثل اون, گروهی که نه اون گروه که لباسشون خاکستری است ولی دلشون سیاه، نه آن گروه که عزرک حمله سریع به صوفیان و این یکی نیست بسیاری در دیوان آقایست خاکستری پاکستان فرقه پشمی داشتن صورتیه و این رنگش خاکستری بوده دلیلش اینه یو فورس این جواب ندید اون سندا اونایی که سیاه پشمی شون میشن سیاه می‌ذارم برای پارچه سیاه اونای که سفید هم، باز رو می‌چینن برای پارچه سفید اونایی که قهبه‌ای هم، رو می‌چینن برای پارچه قهبه‌ای یه نزار پشنها قاطی هست سیاه و سفید و قهبه‌ای و اینا که نمیشه اینا رو تویش کودمونه رو خراب مکنن اینا رو می‌زنن قاطی هم، رنگش درمی‌ها خاکست داریم بنابراین ارزون قیمت‌ترین، ارزون قیمت‌ترین پشمی. و احیانا چاید و نامرگوب ترینش پاکست تارید. مم. و هم وقت که اول البته هارای که نمی کنند. اول میگفتن که صوفیه باید این خرقه پشمی رو روی تنشون بکشن. برای که تنشون آزار بگیدنه. ریاضت بکشن. و این خرقه هرچی کونه و هرچی سنگین تر و هرچی وصلش بیشتر و هرچی قدیمی تر و حتی گاه یک نوشتن تا حالت دیگه به نظر ما ابلهانه میاد میگه که تو خرقه ی حسین ابن منصور حلاج نمیدونم چی پیش داشت قد یه لفه باقالی و این نه برای اینکه عذیتی کن به نظر ما خیلی میاد میاده ولی خب نوشتن میاده که تو تذکر حتی هست این غلام حمت رو حافظ خیلی به کار گلام همت آنم که زیر چرخ کبود چه رنگ تعلق پذیرت آزاد است. سعدی هم به کار می‌برد این گلام همت آنم اصلا ترکیب سعدی است که حافظ گرفته سعدی میگه که گلام همت آنم که پای بند یکی است به جانبی متعلق شد از هزار برست چنان به موی تو آشغتم به بوی تو مست که نیستم خبر از هرچ در دو آلم هم دیگر به روی کسیم دیده بر نمی باشد خلیل من همه بوتهای آذری بشکرست توی او میگه قلام همت آنم هم که پایبند بند یکیست به جانبی متعلق شد از هزار است. اینجا باید یادآوری کنم که خواهد جحافظ تمام شعرهای قبل از خودشون حتی شعرهای درجه 3-4 هم خونده و هر ترکیب قشنگی که این داشتن گرفته سعدی که جای خود داره سعدی رو ده ها مصرهای درسته سعدی رو به کار برده اصلا سعدی داره که دنبال تو بودن گناه از جامعه ما نیست با قمزه بگو تا دل مردم نسته تا آمده این حالی کیه؟ زیوارش در داره. نه؟, نه؟ این کار میکنه اینه کیه؟ تاموش رو به خود کنم که میگه دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست با قمزه بگو تا دل مردم نسته تا آمده حالی حافظ میگه که چون چشمتو دلمی برد از گوش نشینان تو بودن گناه از جانب ما و چون خیلی معروف بود سعدی دیگه نسبت انتحال و خاجه نمیشی که بگیم که اینو سرقت کرده خدای نکرده خیلی اینو رو میگرفته و الان در بیت بعدی میرسیم به هوش باش که هنگام باد استقنا هزار خرمن تاعت و نیم جونن هست با استنا ترکیبی است که عدتار به کار می‌برد در کتاب منطق و مال کارهای کشاورزی وقتی که خرمن رو یعنی گندم رو دروغ می‌کنن می‌ریزن یه جا همه‌ش رو برای اینکه بکوبن گاب می‌دازن روی این خرمن و یه چوبی که این چیز رو خورد می‌کنه، این ساغه‌ها رو و گندمار هم از خوشه در میره ولی اینا همه پاکی هم داره. بعد این خیرمن رو باد میره یعنی میریزن رو هوا وقتی که باد کم هست البته نه وقتی که هوا ساکنه نمیشه وقتی هم که باد شدیده این کل نمیشه وقتی باد خیلی کمی هست این میریزن رو هوا که سبوتتره میره اونورتر گندم تر نزدیک میره و به این تحقیل گنده ما از پاه شدم میگه خرمنه تاعت تو اگر باد بینیازی خداوند به وضع نصف جو ازش میپاقی نیست همه رو باید به باش که هنگام باد استقنا استقنا یعنی بینیازی وقتی که باد بی نیازی خداوند رزید هزار خرمن اطاعت به نیم جو ننهند انقدر مغرور به نماز و دعات نباشه به کنفیسر خاله خدا شدید اگر باد بی نیازی خداوند به هزار خرمن اطاعت تو نصف جو هم ازش کافی میشوند جناب عشق بلنده جناب یعنی آستانه در اصلا اینم که میگن جناب آقای پلان جناب آقای پلان یعنی ما که قدرمون اون اندازه نیست که با آقا رو در رو صحبت کنیم برای که معمولاً آدمای های همتراز میتونن با هم حرف بزن وقتی کسی مقامش خیلی بالاتر از آدم باشه اون وقت باید عرایزشو به آستانه در او بکنه. اینی میگه جناب آقای فلان یعنی من به آستانه در شما چیز میکنم جناب عشق بلنده است هممتی آقست آستانه عشق بلنده جای دیگری همین میگه باز جناب عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است کسی آن آستان رو که جان در آستین داره جناب عشق بلند است همتی حافظ که عاشقان ره بیهمتان بکن زهوار همون <تص> زهواره و این دوره که مثلا برای این تخته گذاشتن که بمونه اینا رو بشکن در اصلا نجاجی بشکن زهوار و این کمچم شد زهوار وقتی زهوار چیزی در رفت بگه معلومشکت داره خراب